سوره مبارک یاسین هم از سوره های مکی هست و از نظر ترتیب چهلو کمی سوره هست که بر آن حضرت صلی علیه و وسلم نازل شد و سوره یاسین هم مطالب بسیار زیبا ادارت مطالب سوره یاسین هم اکثرا توحید و ایمان و اعتقادی هستن در این سوره را برای این سوره فضائل زیادی هم تو حادث آمده رسول الله صلی علیه و سلم فرموید هر چیزی یک قلبی دارد دلی دارد و قلب قرآن یاسین هست و فرمود که یاسین را بخانید بر مردهایتون بخانید یاسین را بر مردهایتون بخانید خدای عز و جل در این سوره چنان خاصیتی گذاشته که روح راحت تر خارج میشه انسان راحت تر میمیره سکراتش آسان میشه لذا این سوره یاسین مناسبتش را اول ارز بکنم و ربطش را ارز بکنم که ما در سوره سبا و فاطر همون یه مضمونی که خاندیم نفی شفاعت بود خدا قدرتش کامل است غیر الله قدرتی ندارند حتی به اندازه اینکه که سفا سفارش شما بکنند شفیه غالب بشن نیستند حالا در سوره یاسین و صافات و صاد و بخشی از زمر که میاد تا آخر هم نفی شفاعت هست همین موضوع مثلا در سوره یاسین ما خانیم. خدا تعالی می فرماید که چرا وقتی که شما میگید خدایان یعنی ما شفاعت میکنند چرا وقتی که عذاب خدا آمد نتونستن در گذشته انسان های مثل شما این مطلب رو من قبلا عرض کردم دوباره هم یاداوری کنم که منظور از شفاعت اونا شفاعت در آخرت نیست ما مسلمانان اعتقاد به شفاعت اخروی داریم منظور از شفاعت مشرکین شفاعت در دنیا اونا به آخرت اصلا ایمان نداشتند اعتقاد نداشتند میگفتن در دنیا اگر خدا بخواد برای ما مصیبتی بیاره برای جان ما برای مال ما این خدایانی که ما برایشون گسفند کشتیم شطر کشتیم همشت صدایشون زدیم نظر و نیاز دادیم اینا جروع خدا رو می گیرن نمی خدای خدا یا این ما, مال منه این بنده منه این من افزات میکنم نمیذارم برش مشکلی پیش میگفت این ش... خدایان شفاعت ما میکنند به این معنی شفاعت است لذا الله عزوجل میفرماید خب اگر اینا شفاعت میکنن تو سوره یاسین میاد چرا وقتی که عذاب آمد کسی نتونست اونها را کمک بکنه فلا فلو... فلا چرا خدایان یاری نکردند عابدان خودشون را زمانی که خدا تصمیم گرفت که عابدان را عذاب بده چرا به دردشون نخوردند اس معلوم میشه این شفاعتی که شما میگید اینم خرافات لذا در سوره مبارکه یاسین ابتدا تمهید هست همراه با ترغیب تر تمهید ترغیب به سوی قرآن و پنج دلیل ذکر میشه و زجر و تخویف و تبشیر هم زیاد میاد توی سوره خودی یاسین از حروف مقطعات گشتی بعضی میگن یاسین اسمی از اسمای رسول الله صلی الله علیه وسلم هم است بعضی میگن یا یای خطاب قرار دادن سین را مخفف انسان قرار دادن یاسین یعنی یا یو انسان ولی انها اس دلیل برای سنی است اینا یک سری چیزای هستند که مدرکی وجود نداره الله اعلم بمراده والقران الحکیم این ترغیبه و این هم تمهید و مقدمه است سوگند به قران حکیم یعنی این قرآن که سراپا حکمت است این قرآن که سراپا دانایی است این قرآن شاهد گواه است محمد که این نکل از که تو از فرستاده شدگان هستی تو از پیامبران الهی هستی ببینی بزرگترین دلیل رسول الله صلی الله علیه و خود قرآن است چون که بعد از رسول الله هیچ کسی نتوانست کتابی مثل قرآن بیاره باوجود که چند جا خداوند به مبارزه طلبید یه جایی فرمون مثل قرآن بیارید یه جای فرمو ده تا سوره بیارید یه جای فرمو یک سوره بیارید نتونستند پس این پیامبر که پیامبر امی هست به مکتب نرفته هست یک خط هم نمیتونه بنویسه این پیامبر چنان قرآنی با خود آورد که انسانیت را آجز کرد و تا قیامت این مبارزه تلبیدن هست تا قیامتی که بیاد مثل قرآن بیاره نتونسته بس این دلیلی که واغین پیانبر خداست و این قرآن شاهده والقرآن القرآن الحکیم قرآن شاهده که انکا من المرسلین فرستاده شدگان هستی على صراط مستقیم بس صراط مستقیم راه نمائی میکنی صراط مستقیم راه توحید هست یکتا پرسی هست تنزیل العزیز الرحیم این قرآن تدریجا نازل شد کم کم نازل شد از جانب اون ذاتی که غالب هست و مهربان هست چرا؟ لتم قوما ما انذر آباؤهم تاکہ بیم بدهی بترسانی قومی را که بیم داده نشدن پدرانشان بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام بر مکہ و اہل مکہ ہزاران سال گزشتے هیچ پیانبری مبعوث نشدے فهم غافلون پس انها در غفلت محض بس برند لقد حق القول على اکثرهم اما خداون اینجا یاد میکند. می کند اناد قوم را زدیت قوم را خداون می که بر اکثر انها این مسئله اثبات به اثبات رسیده که فهم لا يؤمنون انها ایمان نمی عبرند. لقد حق القول یعنی این قول و این فیصله ثابت شده فیصله شده که نه ایمان نمی آورند چرا ایمان نمی آورند که مهر جباریت خوردند مهر محرومیت خوردند که ما گفتیم اسمش مهر جباریت ہے. حالا سوال جاست که این ظلم نیست خدا تعالی خودشون اونها را از ایمان محروم کرده خود خداوند مهر جباریت به قلبشون زده که ایمان درون اون قلب نیاد ما قبلن این جواب را خدمت شما ارز کردیم در پرتوه آیات الهی خداوند اون قلبی را مور می که خود اون انسان قبلا جدال بلباطل بکنه از خود اناد و تعصب نشان بده از خود زدیت نشون بده پس مور خورده نتیجه اون مور نتیجه عمل کرده خودش هست کلا کل بل ران علی قلوبه ماکانو یکسیبون چه چیزی بر دل های انها و زنگار گرفت ماکانو یکسیبون عمل کرد خودشون لذا الله می لقد حق القول على اکثرهم بر اکثر انها این قول اثبات رسیده فهم لا یؤمنون انها ایمان نمی آورا في اعناقهم همانا ما قرار دادیم در فہیہ الی الازقان این توق تا چانه هست ببینید تشبیہ است تشبیہ یک مثال حسی شما تصور بکنید یک انسانی که توق به گردن داره یا بلا نسبت بعضی ها که دارن این گردن بند ها رو دیدی بعضی مردم می بندند این گردن بندها را طوری دکترها تجویز میکنند که این چانهش بالا هست سرش بالا هر چی میخاد سرش را پایین بکنه نمیذاره قفله لذا خداوند میفرماید مثال اینها مثل همون تو قصب گردنشون تا این زیر چانه آمده گیر کرده هر چی میخاد پایین را نگاه بکنه نمیتونه نگاه بکنه یعنی میخاد به سوی هدایت بره به سوی ایمان نگاه بکنه خدا نمیذاره نگاه بکنه چرا عرض کردم چون قبلا عمل کردش بد بوده فهی الی الاسقان پس تا چانه هست فهم مقمحون پس آنها سرغیشن بالا هست پایین را نمیتونه نگاه بکنه که هدایت بشه و یک مثال مثال دوم و من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا الله می فرمای ما قرار دادیم از جلوی اونها یک سد و دیوار غیبی و من خلفهم سدًا پشت سرشون هم سد و دیوار غیبی نمی تونه بره نمی تونه عقب بره یعنی در هیچ مسیر درستی نمی تونه پا بذاره فغشیناهم ما اونها را تحت پوشش قرار دادیم یعنی اونها به وسیله پارچه چیزی پوشوندیم فهم لا یبصرون اونها نمی بینند اونها حق را نمی بینند بینویسی بدلیل حجابات انقدر پرده و حجاب جلوشون خدا گذاشته که هیچ وقت واقعیت را نمی بینند بنابرا همین که خدا اینها را از ایمان محروم کرده و سواؤن علیهم برابر از برانها اعنذرتهم اینکه انذارشون کنی املم تنزرهم یا انذارون نکنی نترسونی فهم لا یؤمنون هم لا یؤمنون انها ایمان نمیارند چه ای پیغمبر بی چه نترسونی این همون نتیجه محر جباریت است که پیغمبر اونها رو ترساند یا نترساند ایمان نمی آورند چه کسانی انذار شما برایشون مفید میشه انما تنظر و تبع الذکر شما انذار میکنی کسی را که پیرو قرآن باشه با قرآن اناد و زدیت داشته باشه و خشی الرحمن بالغیب از رحمان بترسه ندیده بترسه ایمان بالغیب داشته باشه این انسان هدایت میشه فبشره بمغفرت و اجر کریم این را مغفرتی مجده بده و اجر معزز و بعد الله تعالی میفرمه این انسان هایی که از هدایت و ایمان محرومند قبلا خدمتش شما عرض کردم درجات زلالت را درجات زلالت و گمراهی 4 تا هستند اولین همین اناد هست تعصب هست که انسان از خودش نشان میده ببین این از طرف خود انسان است این مهر محرومیت را خدا نزده خدا زده اما به سبب عملکرد سوی انسان انسان از خود تعصب نشون میده نمی حق را بپذیره. خدا گمراهش میکنه این درجه دوم زلالت وقتی که خدا گمراهش بکنه با اهل حق جدال میکنه این درجه سوم زلالت اسمش است جدال بالباطل با اهل حق چی میکنه درگیر میشه اهل حق آیات الهی را میخانند دلائل توحید را میخانند این در مقابل اونها داستان و افسانه تعریف میکنه داستان تعریف میکنه معنیش اینه که یعنی این آیه که شما میخانید این اشتباه هست شما برایش داستان تعریف میکنید شما برایش آیه میخانید که این تدعوهم لایسمو دعاکم شما اینا را بخانید اینا دعای شما را نمیشنون ولو او اگر بشنون مستجابو لکم اجابت نمیتونه بکنه این قدرتی نداره و میگن فلان انسان رفت سر قبرش رفت سر فلان چاه اونجا نابینا بود بینا شد فلج بود خوب شد اینا افسانه ها یعنی این آ... الایازو بالله این آیه خلاف در میگه این را میگن جدال بالباطل یعنی در مقابل دلائل حق اینها چنان اساطیر الاولین و افسانه های دروغین میارند که میخواند آیات را بی اثر بکنند آیات را بی تأثیر بکنند ای بند خدای خدا مغفرتش بکنه یه وقتی ما اون زمان طلبگی از پنجاب میامدیم کویته خانش بود اصل مال اینجا بود ولی فراری بود اونجا خانش یک عکس بزرگی بود من نشناختم این اکس مالکیه اون اکسای تصوری و تخیلی هستن بعضیا گفته گفت این عکس مالی که گفت این مال پیر پیران هست شیخ عبدالقادر جیلانی است. اولا من گفتم که نماز شما مشکل داره تو این خونه این عکس گفت هر چی میگه همین یکی رو نگو من اینو بیرون نمی کنم بعد من خواستم در باره توحید باش صحبت کنم بلاخره کم و بیش آیاتی که بلد بودیم براش میخوند. اون میگفت که شما نمیدونید این چیزهایی هستن که شما هنوز متوجه نیستید به جلوتر بیری متوجه میشی. فلان بزرگ روی دیوار نشست فلان را صدا زد روی دیوار نشست دیوار اون را به فلان جا برد فلانی روی جانماز قرار گرفت جانماز اون را به خانه کعبه برد فلانی از این نوع داستانها و افثانهای دروغین با اینها از این طرف آیه دار توری دار صحبت میکنه که ثابت شده که این آیات علی عز بالله تاثیر ندارند این را جدال بالباطل یعنی در مقابل حق و اهل حق جدال کردن و افسانه و داستان تعریف کردن که بالاخره آیات شما هیچ تاثیری نداره. وقتی که سومین درجه است وقتی که انسان گمراب به این درجه برسه خدای عز و دلش را مهر می زن محر جباریت دیگه اون نمی فهمه لهم قلوب لا يفقهون بها دل دار قلب دار ولی نمی فهمه ولهم آینون لا يبصرون بها چشم دار نمی بینه ولهم آزانون لا يسمعون بها گوش دار ولی نمی شنبه اینا خدا همین می اینا از بس با اهل حق درگیر شدند خدا محرومیشون کرده پس این محرومیت یک پس منظری دارد کسی اعتراض نکند که خدا اینا رو که محروم کرده ظلمه خدا خودش مظهر زده جباریت که ایمان نیاورند خب خداوند زده به خاطر اون جدال بالواطلیش به خاطر اون تعصب خشک و خالیش به خاطر اون تکبرش پس اصل خودش باعث شده که این مهر بخوره لذا الله می فرماید وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون برابر است بترسانی یا نہ ترسانی اینها ایمان نمی آورند نما تنذر من اتبع الذکر جزء الناس که شما می ترسانی یعنی از انذار شما نفس می برد اون انسانی که اتبع الذکر تعصب داشته نباشد پیرو قرآن باشد مراد ذکر قرآن است اتباع بکنه قرآن را و خشی الرحمن بالغیب از رحمان بترسد نادیده بترسد فبشره به مغفرت و اجر کریم به اون بده مغفرتی را و همچنین اجر معززی را بشارت بده انا نحن نحی الموتا همانا مایم ما که زنده میکنی مردهارا و نکتوب ما قدم و اینجا تخوی فخروی است Allah می می‌فرم فردا هم ما زندمی‌کنیم و نکتب ما قدم‌ه و آثارهم و ما می‌نویسیم آن که اونها تقدیم کردند و آثار پشت سر گذاشته. ببینید هر یکی از ما انسانها اعمالمون بر دو قسمت مقدمنا و ما آخرنا مقدمنا و ما آخرنا. اونی که جلوتر از خودمون میفرستیم. اونی پشت سر خودمون میذاریم. اینجا تعبیر شده مقدم قدمو آثار و آثار آثار چیه؟ ما قدمو مشخصه کسی نماز می کسی صدقه می کسی روزه می کسی ارز کنم که بر سر یتیم دست می کشه یتیم لباس و کفش می خره کسی بلاخره هر کار نیکی میکنه این ما قدمو هست و همچنین در کارهای بد کسی دزدی میکنه کسی شرک میکنه کسی زنا میکنه کسی ظلم میکنه کسی به سر مظلوم میزنه اینا تمام ماقدمو هست ماقدمو یا نیک یا بده اما آثارهم پشت سر یا ماخرنا ما اون چیه اون اثر نیک یا اثر بدی که انسان بعد از مرگ از خودش میذاره مثلا یک کسی از فرزندان نیکی تربیت میکنه همه فرزندان صالحند، مسلحند، عالمند، آفزند خدمت میکنند، اجتماعیان در بخورند، دکترم، مهندسم برای جامعه خدمت میکنند یک کسی دیگه از فرزندان دوزد و عیاش و لاتو از کنم ظالم و آدمازار تربیت میکنه خب اینا آثارهم همینا هستند یک کسی هست که مسجدی درست میکنه، مسافرخانه ای درست میکنه، چای ها میکنه، کناتی درست میکنه، همه انسان آزش استفاده میکنه. اینم جوز آسای راهم هست. یک کسی دیگر هست که میخانه ای درست میکنه، فساد خانه ای درست میکنه که اونجا بالاخره مردم فساد میکنند، مردم گناه و ماسیت میکنند. اینم جوز آسای راهم هست. پس خداوند میفرماید ما میدانیم. و نکتوم میل ویسی ما قدم اون چیزی که جلوتر از خودشون فرستادند و آسارهم یعنی پشت سر خودشون گذاشتند. این تفسیر آسارهم و کل شیع احصیناهو احسن في امام مبین هر چیز را ما احاطه کردیم فی امام مبین یعنی در لوح محفوظ لوح محفوظ را امام میگویند چون همه به اون نگاه میکنند اونجا چه نواجده؟ که شما به امام نگاه میکنید. و از امام تقلید میکنی اون قیام میکنه شما قیام میکنی اون رکوم میکنه شما رکوم میکنی لوح محفوظ در روز قیامت هر چی بگه ملاک او هست چون همه چیز در اون نوشته شده وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اینجا خداوند اززا وجل یه تخویف دنیاوی بیان میفرماید که کسانی قبل از شما بودند آمدند مردم را موعظه کردند مردم حرف گوش نکردند به چه عذابی گرفتار شد ببین اینجا اون چیزی که در این مثال بیان شده معلوم میشه شد دو نفر را فرستادند خدای عزوجل برای تبلیغ قومی این دو نفر کافی نبودند نفر سوم را هم فرستادند این سه نفر یا پیامبر بودن یا غیر پیامبر مردم را از عذاب خدا بیم دادند مردم حرف اونها رو گوش نکردند مردم گفتند هرچی بدبختی ما داریم از سر شما سه نفر داریم ما شما را میکشیم ما شما را سنگسار میکنیم ما, ما فلان میکنیم تهدید کردند و میخواستند اونار را از پای در بیارند که یک مومنی از میان خود این مردم ایمان آورده بود او قیام کرد او بلند شد او تبلیغ کرد قومش را گفت ای قوم بیچاره اینا پیامبران خدا هستند نکنید نکنید که عذاب بر سر شما می آید اون صدیق اون امت بود هر کسی بود بعضی میگه اسمش حبیب نجار بود بعضی چیزهای دیگه میگه بالاخره اون قوم خودش را ترساند تا اینکه اون را حمله کردن بر اون فرد اون رچنا زدن و زدن تا شهیدش کردند خدا میفرمای من وارد بهشتش بردم من فوراً به بهشت بردم اورا رفت منظور از بهشت در اون عالم برزخ نعمت های بهشتی دادن بعد اونجا تمنا کرد کاش قوم من میفهمید اما خدا میفرماید بعدن قوم را هم نابود کردم چون این پیامبران من را انکار کردند قوم را من نابود کردم خب اما خداوند نگفته که این قریه کدوم قریه هست و این قریه کجا در چه تاریخی بوده قبلا خدمت شما عرض کردم که قرآن زیاد به تاریخ و به جغرافی این قریه کجا بوده در چه زمانی بوده به این مسئله اهمیت نمیده چرا؟ چون که اون مطلبی که نظر قرآن هست موعظه هست پند هست ارشاد هست اون مطلب باید از دست نره اگر ما ذهنمون و ما وقتمون تلف بشه با اینکه در کدوم زمان بود در کجا بود بعدا اون پند و اون معایز حاصل نمیشه به این خاطر خدای اززوجل اون مقصود را برجسته میکنه هدف از این داستان اینه که ما یک نتیجه بگیریم گایی انسان به جزیات میره لیزت ته داستان میره اون نتیجه هیچوقت حاصل نمیشه اما علماء اینجا بحث کردند بحثات طولانی است من خلاصه ارز میکنم بعضی میگویند که این شهر و این قریه شهر انتاکیه هست و مراد از مرسلون فرستاد شدگان خدا اینها را نفرستاد اینها را حضرت ایسا فرستان نمایندگان ایسا بودند سه نفر بودند که ایسا فرستادشون یحیی، یونس شمعون یکی حضرت یحیست یکی یونسی یکی شمعون اینا فرستادگان ایسا بودند اینا را برای شهر انتاکیه ایسا فرستاد اینا آمدن تبلیغ کردند و بعدن این مرد مومن قیام کرد از این سه نفر از فرستادگان و نمایندگان ایسا دفاع کرد تا که خودش را شهید کردند این تفسیر را بعضی از آل تفسیر نوشتند اما علامه ابن کثیر که تفسیرش معروف است تفسیر القرآن کریم لابن کسیر بشدت این را رد کرده چندین دلیل ذکر کرده که بعضی از دلایل را ارز میکنم اول نوشته که اینجا خدا میفرمه اذ ارسلنا ما فرستادیم معلومیش خدا فرستاده ایسا نا فرستاد. ایسا نفرستاد اگر ایسا می فرستاد حتما اینجا اشاره ای بود که بنده ما عیسی سه نفر را فرستاد اینجا وقتی خدا به خود نسبت میده معلوم میشه که این قریه ای بوده که خدا خودش برای اونها فرستاده دومین دو دلیلی که ایشون می فرماید اون که در تاریخ داریم در باره شهر انطاکیه شهر انتاکیه بالاخره به عیسی ایمان آورد و ایران نشد اما درباره این قری خدا میفرماید که خدا یک لحظه عرض کنم که برای انها عذاب آورد و چراغ زندگیشون خاموش شد یعنی همه مردند معلوم میشه برای این این عذاب آمد اما برای انطاکیه که عیسی فرستاد اهل انطاکیه همه ایمان آوردند عذاب نیامد و دوم سوم اینه که بعد از عیسیٰ علیہ السلام چنین عذاب همگانی برای هیچ کسی نی آمده اینجا نوشته که عذاب همگانی آمد لذا چندین دلایل علام امن کسیر نوشته که از این دلایل معلوم میشه این قریه قریه اهل انتاکیه نیست قریه انتاکیه نیست این قریه قریه دیگه هست این انتاکیه اول مدینت آمند اهل انطاکیه اولی شهری بودن که به عیسی من آوردند فا اهل هذه القريه ذکر الله تعالی انهم كذبوا رسله و انه اهلكهم واحده اما اهلین قریه خدا میگه تکذیب کردن من اونها را عذاب دادم معلوم میشه پس اون چیزی که در بیشتر تفسیرا نوشته اهل انطاکیه انطاکیه نیست یک قريه دیگه بود کدام قريه الله بهتر میداند ستا پیامبر خداوند از و برای انها مبعوز کرد اکثر مفسرین اسماشون را نوشتند شیخ ما رحمه الله همین را ترجمه میده اینا سه پیغمبر مستقل بودند اسمشون صادق صدوق شلوم سه نفر بودند کی بودند اسمشون؟ صادق صدوق شلوم سه تا پیغمبر اینا آمدند و بعدا اون حبیب نجار از این پیغمبران دفاع کرد خلاصه هر کی بودند ببینید چی شد این باید برای ما درس باشه الله می فرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القريه برای اینها صفت اصحاب قريه را بیان کن اون قریه‌ای که ارجاء ها المرسلون ای پیغمبران اونجا آمدن فرستاده شدگان ما آمدند اذ ارسلنا الیه مثنین وقتی که ما فرستادیم بسوی اونها دوتا پیانبر را فکذبوهما اون دوتا را تکذیب کردن فعززنا بثالث ان, ان دوتا پیانبر را ما تقویت کردیم با پیانبر سوم این هر سی آمدند گفتن فقالو انا ایلیکم مرسلون گفتن ای قوم ما بسوی شما اسوی پروردگار فرستاده شدیم اگر از طرف ایسا بودن می گفتن ما فرستادگان ایسا هستیم اما قوم چی جوابی داد دا. یکی از دلایل اللہم ابن کسیر همین جوابی قوم است. قوم گفت شما بشری مثل ما بشر هستید ببینید اگر فرستادگان ایسا بودن هیچ وقت این اعتراض را نمی‌کردند چون اونا هم می ایسا انسانه سینما انده از انسانها فرستاده چون انحام نمایندگان ایسا نبودن اینا نمایندگان خدا بودند فرستادگان خدا بودند انبیا بودند که قوم از اونها انتظار داشت که پیغمبر نباید انسان باشه پیغمبر باید چی باشه؟ فرشته باشه لذا گفتن قالو ما انتم الا بشر مثلنا نیستی شما مگر بشر مثل ما هستید و ما انزل الرحمن من شيء رحمان هیچ چیزی نازل نکرده خدا چیزی نازل نکرده ان انتم الا تکذبون شما نیستید مگر دروغ میگید خلاف داری میگید به پیامبران گفتند پیامبران جواب دادند و خدا را گواه گرفتن خدا را گواه گرفتند بنوع سوگند هست شما وقتی میگه خدا شاهد خدا شاهد معنیش اینه والله چون در والله هم ما حاصل و نتیجه همینی که خدا شاهدی. قالو ربنا یعلموا اینا ایکم لامرسلون رب ما میداند. یعنی خدا شاهدی. خدا جواهس کے ما بسوی شما فرستادی شدیم و ما علینا ایلا البلاه والمبين و برمانیس مگر فرساندن آشکارا آشکارا و شفاف حق رب شما میرسالی. اما قوم چی گفت بی ادبی قوم را ببین به این پیامبران توهین کرد گفت هرچی بدبختی بختی ما داریم از, از روزی که شما آمدید بی برکتی آمده قطع آمده محصولات زمین خوب نیست اینا همه به خاطر همین دعوتی که شما جدیدا مطرح کردید قالو این نه تطییر نبکم این نه ما به وجود شما بدفالی گرفتیم تفسیر جلالین مشتا ل انقطاع المطر عنا بسببكم چون به سبب شما باران قطع شده از روز شما آمدی باران نیامد ما به شما بد می میگیریم لذا آخرین هشدار را به شما میدیم باز میایید باز بیایید از این مسیر و از این دعوتی که دارین باز نمیایید ما شما را سنگسار میکنیم لئن لم تنته اگر باز نیامدید لنرجمنکم حتماً حتماً شما را سنگسار می کنیم ولیمسنکم منا عذاب علیم حتماً به شما از جانب ما عذاب دردناک میرسه. قالو قالو طائرکم معاکم اینا گفتم بدفاری با خود شماست یعنی عمل کرد خود شماست کفره شرک انکار انبیاز که خدا برای شما باران نمیده. ده این ذکرتم آیا چون شما پند داده شدید نصیحت شدید به این خاطر شما انکار می بل انتم قوم مصرفون در واقع شما قومی هستی متجاویز مصرفون یعنی از حد شرع و عرف و عقل گذشتید از حد گذشتی شما بالاخره الله عزوجل می فرماید برای این سنفر و تعیید این سنفر یک مردی از خود همین قوم آمد و جا من اقصى المدینه رجل يسعى از گوشه شهر مردی آمد دوان دوان می آمد که بعضی اسمش را حبیب نجار گفتن در همون ابتدای شهر در ورودی شهر بازی اهل تفسیر نوشتن این پیامبران وقتی که این شهر آمدن تازه وارد این شهر شدند مهمان همین مرد شدند اونجا برای او تبلیغ کردند اون را دعوت دادند او ایمان آورد چون که از انبیاء الهی پذیرایی کرد خدا ایمان نصیبش کرد او ایمان آورد بعدن این پیامبران تو شهر آمدند و او مطلع شد که مردم با این پیامبران درگیر شدند او آمد خودش را پیامبران رساند و از این فرستادگان الله حمایت کرد این در واقع سدیغ اون امت بود و جاء جا من اقسل مدینه رجل یسع از گوش شهر مردی که دوان دوان می آمد قال يا قوم اتبعو المرسلين ای قوم من شما پی کنین از پیانبران اتبعو من لا يسألكم اجراً و هم محتدون شما پیروی کنید از اون انسان های مقدسی که از شما هیچ اجر و پاداش نمی خواهند و هم محتدون انها بر راه هدایت هستند اونها به خود این حبیب النجار گفتم پس تو هم مثل انها یک تا پرستی نکن تو هم به اینها ایمان آوردی ایمان خودش را اظهار کرد گفت و مالی لا عبدالذی چه ده منا که من عبادت نکنم اون ذاتی را کہ فطرنی مرا خلق کرد و الیه ترجعون بسوی او فقط و فقط برگردانده می شوید ببین بی توحید تنها با این ثابت نمیشه با الا الله ثابت نمیشه من خدا را عبادت می کنم خالق خدا مالک خدا رازق خدا تنها این این جانب این جهت را میگن این جهت را میگن جهت اثبات یعنی برای خدا صفات خدایی را اثبات کردن توحید کامل میشه که اولا از غیر خدا چی کنی این صفات را نفت کنی به همین خاطر ما وقتی کلمه میخانیم اول میخانیم لا اله یعنی دیگران نیستند دیگران نه قدرت دارن نه علم غیب دارن نه مشکل کشا نه حاجت روا نه از کنم که غیب دان نه مدبر نه متصرف الله پس نفی این جانب اثباتش است نفیش اس جلوتر میاد میگه اتتخذ من دونیه آلها آیا من به غیر از خدا دیگران را معبود بگیرم اینایی که شما گرفتید این یرید و بذرن اگر برای من رحمان اراده آسیب بکند اراده زرر داشته باشد لا تغنی عنی شفاعتهم شیعا شفاعتی این خدایان یعنی دروغین دور نمی کند از من هیچ چیزی ببین در سورای گذاشته نفی شفاعت اینجا هم نفی شفاعت شفاعت اونها چیزی نمی کند برای من ولا لا ينقذون و نا اینکه اونها مرا از آتش بیرون می کنند، و اگر من این کاری که شما میکنید این کار را بکنم غیر خدا را عبادت کنم انی اذل ضلال مبین من حبیب در این وقت از گمراهان آشکار میشوم اگر مثل شما غیر خدا را عبادت کنم اینجا تفسیر جلاله نوشته ان عبد تو غیر الله اگر غیر الله را عبادت کردم من گمراه میشم لذا ای قوم بهش به شما ایمانم را اعلام میکنم اینی آمنت به ربکم فاسمعون گوش کنین من ایمان آوردم به معبود یگانه شما ایمان آوردم فقط او را پرستش میکنم اما ادامه قرآن نگفته چی شد ولی خود به خود معلوم میشه از سیاق معلوم میشه این را ما در اسطلاح خاندیم میگه اندماج یعنی مطالبی که از سیاق و سباق فهمیده میشه قرآن نمیاره اونها را که نیازی به بیاوردن اونها نیست از سیاق معلوم میشه وقتی این تبلیغ را کرد این سخنرانی را کرد قوم عصبانی شد به خود او حمله آوردند و ایشون را چنان زدند چنان لطکوب کردند تا شهید شد الله تعالی بعد از شهادتش را ذکر میکند قیل ادخل الجنه قیل ادخل الجنه شد وارد بهشت شو ببینید حیات شهدا که زندگی دار شهدا در قرآن هم آمده ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اینا که در راه خدا کشته میشن به اینها مرده نگید بل احیاء اینا زنده هستند. حیاتشون چه حیاتی هست این حیات یعنی خدا اینها را میبره در بهشت بخورند هنوز قیامت نشده بهشت چطور در بهش یا در برزخ این مساله یه حدیثی که در سنن ترمیزی آمده حل میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسانی که در راه خدا شهید میشند روح اینها پرواز میکنه میره در عالم برزخ در کالبود پرندگان سبزرنگ و خوشرنگ و خوشگلی روح تو اون پرنده میره پرنده میره و خدای از وجل در زیر عرش خودش به اینها قندیل های میده قندیل هایی که خدا میدونه از طلا هستند از یاقوت هستند از مروارید هستند قندیل معنی همون لانه اونجا جاهای خوبی دارند و از اونجا میرن تو بهشت سیر میکنن تماشا میکنه هر چی دلشون میخواد بر میخورن برمیگردن اونجا پس خدای عزوجل از همین آغاز وقتی که شهید میره در عالم برزخ از او پذیرایی میکنه این در ربهم یرزقون نزد پروردگار به اونا رزق داده میشه بس معنیش این نیست که شهید در این دنیا زنده است که من و تو بریم حاجت من رازو بقائیم نه او دیگه رفته به خدا رسیده اون رفته و در ناز و نعمت اون زجرش را کشیده حضرت شا اسحاق رحمه الله در کسانی که میگویند بعضی از ارواح شهداء یا صالحین بعضی چون مردم معتقدند که اینا وقتی که پرواز میکنند اینا میرند خداوند دوباره این ارواح را میفرسته میگه شما برید به زمین بگردید هر جا بندگان ما مشکلی داره همون منطقه خودتون مثلا این اولیاء ما از سیستان بلوچستان بوده خدا میگه شما همین منطقه خودت بگرد هر کسی شما را صدا میزنه مشکلی داره فرزند میخواد مریضه شما مشکلش را حل کن شایست ساق میگ اینها ها تابحال در دنیا رنج کشیدند، زجر دیدند، الان باید برن به بهشت، الان چرا دوباره بیان دنیا، دوباره باز زجرها و آلام و دردهای دنیا دوباره گرفتار بشن، فلان زن درد داره، فلان مرد تو زندانه، فلان، نه. الان دیگه اون خدا راحت کرده، خدا بشمین که قیلت جن نه. این دوباره چرا دنیا بیاد؟ لذن این خرافات که مردم درست کردند الله می فرمه قیلت خلی الجنه به این بهشتی به این شهید گفته شد وارد بهشت شد قال یا لیت قومی اعلمون گفت کاش قوم من میدان است بما غفر لی ربی به اونچی که رب بخشید خدا مره بخشید و من المکرمین و مرا از انسان های مکرم و معزز قرار داد چه اکرامی کرد چه اعترامی برای من گذاشته شد لذا الله عزوجل ذکر می فرماید بخشی از زندگی شهید را بعد از مرگ که اون شهید وقتی اونجا میره ره تمنا می کاش قوم من می من در چه ناز و نعمتی هستن منظورش چی بود از همون جا خیرخواهی ہے نمیخاد دل اینها بسوزه میخواد کاش اینا میدونستند اینا ایمان میاوردن اگر میدونستند هر کسی در رای حق باشد چنین جای اینا هم رای حق را انتخاب میکردند؟ از همون جا هم دل و خیرخواهی داره قال یا لیت قومی علمون بما غفر لی ربی کاش قوم من میدان است که رب من مر بخشید و من المکرمی مره از انسان های معزز قرار داد اما قوم که این مجاهد را شهید کردند تکلیف قوم چی شد اللہ تعالی میفرمد تکلیف قوم تعیی شد ما لشکری نفرستادیم هزار تفرشت نفر نفرستادیم ما فقط یک صیحه را برای اونها فرستادیم. دادیم صیحه فریاد بعضی من جیخ کشیدن جبرائیل یک فریاد براور جگرشون پاره شد همه مردند همه را خدا یک بار عذاب داد پس به این دلیل علامه ابن کسیر میگه این شهر انتاکیه نیست شهر انتاکیه ایمان آورد برای اونها عذاب نیامد این شهر هر کدوم شهر بود خدا میگه عذاب آمد وما انزلنا على قومه من بعده ما نازل نکردیم بر قوم شهید من بعده بعد از او من جند من السماء لشكري از آسمان نازل نکردیم وما كنا منزلين وما نبودیم فرود بیئیم ما خودمون وارد میدان بیشیم نا كرديم کردیم اینکانت الا صیحتم واحده نبود مگر یک فریاد یک فریادی در واقع سرداد شد فا هم خامدون در این هنگام چراغ زندگیشان خاموش شد چراغ حیات چی شد خاموش شد همه مردند همه در دم سکته کردند کسی از اونها باقی نماند از و بعد این الله عز وجل بندگان خودش ذکر میفهمد که واقعا بند بندگان بر خطا هستند حالا این کلام کلامی کی هست؟ بعضی میگن کلام رسول است پیامبران است همو ستا پیامبر بعضی میگن این کلام کلام فرشتگان است حسرت میخورند یا حسره على العباد ای حسرت بر بندگان یعنی واغیم بندگان جای حسرت دارند چرا ما یعطیهم من رسول پیش آنها هیچ رسولی نمیاد الا کانو بهی یستهزئون مگر بودن نسبت به اون پیغمبر مسخره میکردند. هر پیغمبری آمد کار کردند مسخره کردند الم یرو کم قبلهم من القرون انهم الینا لا یرجعون و ان كل لما جميع الذين محضرون الله عز وجل می فرماید آیا اینها که مسخر می کنند الم يروا كم الهكنا قبلا من القرون چقدر از قرون گذشته ما کردیم انسان های گذشته که مثل اینها سرکشی کردند قوم عاد بود قوم سمود بود قوم لود قوم فرعون انهم الیهم لا یرجعون انها دیگه برنامی کردن اونها نابود شدند اونها از بین رفتند انها نمی ترسند که تکلیف اینها هم مثل اونها بشه فردا خدا اینها را هم عذاب بده و بعد الله تعالی می فرماد و این کلن لما جمیع لدینا محضرون اون علم یروکم تخویف دنیاوی بود این تخویف اخروی هست و این کلن نیست همه اینها لما جميع مگر همگی پیش ما حاضر می شوند یعنی فردا برای حساب و کتاب همه اینهایی که خدا نابودشون کرد خدا حالاقشون کرد برای حساب و کتاب فردا اونها را جمع می کند و از تک تک اونها الله حساب میگیرد الله تعالی بر همه ما رحم بفرماید وآية لهم الأرض الميتة أحيينها واخرجنا, وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب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 و من انفسهم و من ما لا يعلمون در آیات گذشته الله عزوجل بعد از ذکر عذاب دنیا و تخویف دنیوی به عذاب آخرت و حاضر شدن در محضر الله تعالی در آخرت بیان فرمودن اشاره فرمودن و این کل لَمَّا جَمِيعُ الَّذينَ مُحَذَّرُونَ همیه اینها این امتها انسانها پیش ما حاضر میشند حضورشون پیش ما خواهد بود اما این حضور دوباره را زنده شدن دوباره را احیا بعد از موت را مشرکین قبول نداشتند باور نداشتند خداوند تعالی جا دلائلش را بیان می‌فرماید یکی از دلائل زنده شدن بعد از مرگ زنده شدن بعد از مرگ زمین است شما همیشه می که زمین می میرد خشک میشه اثری از حیات در او نمی ماند هیچ بوته سبزی در زمین پیدا نمی کنید اما بعد از این که خداوند از باران میده بعد از این باران زمین سبز میشه زمین زنده میشه زمین شکلش عوض میشه. بس این زمین را کی زنده کرد؟ اون ذاتی که این زمین را زنده کرد؟ اون ذات قادر است که شما انسانها را که بمیرید زنده کند به همین قیاس کنید اگر بیشتر قدرت های خدا را فکر نمی کنید و آیت اللهم الارض المیته آیه و نشانی که هست برای اونها زمین مرده هست احییناها اون زمین مرده را ما زنده کردیم و اخرجنا منها حبا و از اون زمین مرده ما حب و حبوبات و دانجات را خارج کردیم فمنه یکلون بعضی از امون حبوبات را می خورند گندم هست جو هست برنج هست اینا که از اون زمین می رویت انسان ها می خورند و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب در اون باغات انواع باغات باغات نخل خورماء باغات انگور وفجرنا فیها من العيون در اون زمین جاری کردیم انواع چشمها اینها همه از آثار قدرت ماسته این تنبوه این زیبائی این رنگ برنگ اینها را ما ایجاد کردیم چرا لیاکلو من ثمرهی تاکه انسان ها بخورن از محصولات آن وَمَا ما عَيْدِيهِمْ اینا را دست اونها درست نکردن کجا انسان میتونه خودش این تشکیلات را درست کند اینار خدا ایجاد کرده چه بسا خدای طالع درست نمی کند چشما را جاری نمی کند زمین را آباد نمی کند مدتی خوش خوشکه بعد انسان از اونجا کوچ میکنه میره جای دیگه میبینه خبری نیست پس عمل کرد دست انسان نیست و اگر کار انسان بود قدرت انسان بود خب هر جا خودش درست میکرد و ما عمله توحیدیم افلا یشکرون آیا این انسان ها تشکر نمیکنند شکرگزار نمیشوند خب ببینید در این دلائل هم دلائل قدرت خدا که دلیل توحید باشد هم آمد و هم دلیل زنده شدن بعد از مرگ آمد اینها این دلائل فکر کردن میخواد تدبر میخواد این کار کار خداست سبحان الَّذِی خلق الْأَزْوَاج پاکست اون ذاتی که انوار آفرید مراد از ازواج فقط مردوزن نیست انواح است هرچی انواحی که زده دی هم دیگه هستند هستند مثلا اون ذاتی پاک است که ازواج را آفرید هم روز را آفرید هم شب را آفرید هم سردی را آفرید هم گرمی را آفرید هم سیاهی را آفرید هم سفیدی را آفرید هم شیرینی را آفرید هم تلخی را آفرید اینا همه ازواجند هم مزکر را آفرید هم مؤنث را آفرید هم خیر را آفرید هم شر را آفرید بس هم علم را آفرید هم جال را آفرید همه انواع را الله آفرید کلها این انواع متفاوتا مما تنبت الارض از اون انواعی که زمین میرویاند و من انفس اون که در انفس خودشون هستن پسر را هم آفرید دختر را آفرید و مما لا يعلمون چیزهای دیگری که انسان ها نمیدونن واقعا خیلی چیزها هستن که ما نمیدونیم. بسیاری چیزها هستن که مختلفا متفاوتا ما نمیدونیم. بعضی ها انسان ها با تجربه خودشون به اونها رسیدند. بعضی ما هنوز نمیدونیم. یه تفسیری از تفسیرها جدید نوشته و مثلا همین برق که هست همین سیم برق تو این یه مثبت یه منفی هست. یه مصبتی که برب در یکی دیگه تا اون منفی نباشه مثبت کار نمیکنه. و اینا در همه چیز خداوند زوج آفرید در همه چیز تنوع آفرید لذا ای این ها بسیاری از این ازواج یعنی تفاوت ها را زدین را نقیزین را ما می دونیم بسیاری ما نمی دونیم بسیاری در بدن ما هستن بسیاری در زمین هستن بسیاری ما میدونیم بسیاری نمیدونیم شوری هست شیرینی هست تلخی هست ترشی هست لذا الله می این ها اعثار قدرت و دلائل قدرت پروردگار هستند و آیت لهم العل نشانی دیگر این همه دلائل هستن اللہ تعالی این دلائل رزق میفرماید انتظار رب اینه که ما به این دلائل فکر کنی و آیت لهم الليل نسلخ منه النهار نشانی دیگری برای آنها شب هست که نسلخ در میاریم از اون روز را سلخ میگوین پوسکندن را سلخ میگوین پوسکندن را ببینید شما گزفندی اگر بکشید پوستش را در میاری، پوستش را که در بیاری، با چی مواجه میشید؟ با گوشتش، پوست وقت در آورده بشه، میمانه چیه؟ همون گوشتش میمانه، اصل در گوشتون چیه؟ همون گوشته، این پوست ایک آرزه بر او آمده، مقصود ما هم نیست حالا از اینجا معلوم میشه که اصل در این عالم چی هست؟ ببین تاریکی یا روشنی هست؟ اول که خدا تعالی آفریده همه جا تاریک بوده بعدا خورشید را آفرید چی شد روشن شد و الا خدا تعالی این اواره را بردارد این چیزای اضافی را بردارد از این دنیا مثلا خورشید را بردارد ما را بردارد ستاره ها را بردارد چنان تاریک میشه که شب را هم نمی بینی پس اول تاریکی بوده بعدا مثل همو پستیک روشنی آمده بر اون تاریکی سایه افکنده الان خداوند می فهمن نسلخ و نهار همونطور که پوست را می و درمیارند. در شما نهار را یعنی روز را روشنی را در بیار در بیار چی می ماند؟ فیضا هم همه جا تاریکه بس معلومش اصل چی بوده در این دنیا؟ که خدا آفرید تاریکی است. و بعد وقتی که دنیا به اصل خودش برگردد خورشید و ماه و سستاارها و اینار خدا بردارت دوباره همون میآید در آخرت دوباره تاریکی تمام دنیات چنا وحشت انسان میکنه که جگرش میخواد پاره بشه از ترس اما بعدا روشنی که خدا میاره روشنی چیه؟ الله بهتر میدان خورشید دوباره نمیاد. در قرام آمده و اشراقت الارض بنور ربها تمام زمین روشن میشه با نور پروردگار به چه صورت به چه کیفیت الله بهتر میداند لذا الله می فرماید اللهم لهم الليل خو منه النهار آیه و نشانی دیگری برای این ها شب است که ما در میاریم از آن روز را فاذا هم مسلمون در این هنگام همه در تاریکی هستند والشمس تجري لمستقر لها خورشید جاری هست و انجام وظیفه میکنند تا کہ برای اون مستقری که برای او هست یعنی زمان قراری هست یه زمانی هست که خورشید هم قرار میگیره جای خودش قرار میگیره دیگه کار نمی کنه ذالک تقدیر العزیز العلیم ان تقدیر و این اندازه اندازه اون ذاتی هست که غالب است و هر چیز را داند و القمر قدرناه منازل و برای ما هم ما مقدر کردی منازل ایرا ما هم منازل ایدارت همون طور که خورشید منازل ایدارت منازل خورشید 365 تا هست دوران خورشید در ظرف 365 رو تمام میشه؟ اما منازل ماه بیست و هشتا هستن در این منازلش در ظرف بیست و نه روز تا سی روز طول میکشه، قرار میگیرد. حتی آدکل اور جون القدیم تا اینکه که بر ماه مثل شاخ قدیمی میشه. ببین ببینید شاخ شاخ وقتی که سبز و تر باشد هم راسته هم کلوفته اما وقتی که کونه بشه اور جون قدیم بشه این شاخ هم اون حالت راس بودنش را از دست میده کم کم کج میشه و هم باریک میشه ما وقتی که در اون روزهای آخر بالاخره مثل اون شاخ کج بسیار ضعیف و باریک میشه و این ماه و خورشید هر یکی که انجام وظیفه میکنه هیچ وقت به هم دیگه نمیرسند چون اینها در یک دو تا مدار متفاوت هستند للشمس ینبغي لها ان تدرک القمر یعنی یک نظام خدا ایجاد کرده این نظام بر اساس اون تعیین شده الهی ادامه دارد نه ماه به خورشید میرسه نه خورشید به ماه میرسه نشب قبل از روز میاد نه روز قبل از شب میاد هر یک به وقت خودش الشمس ينبغي لها انتذكر القمر نه بر مناسب اون هست که دریابد ماه را ولللیل سابق النهار ونشب قبل از روز میاد و کل فی فلک يسبحون هر یک از در فلکی يسبحون يسبحون دو معنا داره یکی قبلن شما خندید سباح به من شنا هست هر یکی در همون فلک خودشون در حال گشتند شنا میکنه یعنی در حال گشتند و یکی یسبحون از از کنم بعضی گفتن از حساب هست یعنی در یک فلک خودش میگردن و حساب را ایجاد میکنند. با همین دوران ماه با دوران خورشید ما ساعات من را روزهاي من را حفتي من را ماه من را سال من را تمام أزهار منها ميداني وآية لهم وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والنشاني ديگري آيات ديگري دان لبر قدرة الله عز وجل ما حمل كادم أولاد أنهارا در کشتی که پر از آدم است این کشتی بعضی میگن کشتی نوح مراد است که ما نجات دادیم انسانیت را تمام را نابود کردیم بعد این انسانها را نجات دادیم بعضی میگن از مطلقا قدرت الله که کشتی پر از آدم چطور روی آب شنا می کند و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ن تنها این کشتی مثل این کشتی را ما آفریدیم ما یرکبون اون چیزی که برای سوار میشد. ببین مثل کشتی که سوار میشیم در خشکی چی هست؟ بسیاری از علمان وشتن مراد سفینت البر هست سفینت البحر کشتیه سفینت البر شطوره شد در دریا کشتی بارهای را حمل می از ما را از این شهر به اون شهر میبره اما در خشکی شطور به اندازه توان خودش شطور هم بار زیادی میبرد چنانچه ابن عباس از ایشون روایت شده ان ابن عباس ان معناه ممثله ای الابل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفينه مركوبه في البحر بعضی میگویند یا اولامات که در گذشته این اکتشافات نبوده میگویند مراد از این چیزی مثل کشتی روی آب باشد مثل کشتی روی آب همین تلکابین هست که روی رودخانه ها درستش می کنند انسان از بالای آب از این مسیر به اون مسیر منتقل میشه از این طرف رودخانه به اون طرف رودخانه منتقل میشه. اما امروزه که خدای تعالی امکانات زیادی برای اماد آده همون طور که باکشتی از روی آب میریم تمام وسائل من را خودمون منتقل میشیم امروزه امکانات دیگه هست ہمی هواپیماهای پر ماہای بار بریو مسافر بریو غل پیکرو یعنی که چند صد مسافر با چندین تن بار از روی آب میریم از دریاها پرواز میکنه به اون سمت دنیا میره همه اینها میتونه که مصداق این آیه قرار بگیرد. الله میفرماید که و خلقنا لهم من مثل, ہی مثل همین کشتی ما آفریدم برای ها ما یرکبند. اونی که سوارش میشوند. و این نش نغرق هم. همه اینها را ما جا به میکنیم از این جا به اون جا اگر ما بخوایم غرقشون میکنیم فلا صریخ لهم فریاد رسی برای اونها نیست وقتی که خدا غرقشون میکنه همین هواپیما ها گایی منفجر میشه افراد انسان ها همه میوفتند تو دریا غرق میشوند هواپیما خودش میفته تو دریا و لا هم یونقذون و نه اینکه اونها در میشوند کسی دیگه نمیتونه اونها را انقاذ کنه نجات بده الا رحمت مننا اگر رحمت خود ماست و مطاعن الاحین <تصفح> و بحرگیری تا مدتی یعنی خدای تعالی خودش از بین نمیبره خودش کشتی را غرق نمیکنه، خودش هوا را سر نمیکنه. نمی انسان ها بذار زنده بمانند تا مدتی بحر بگیرند از مطاع دنیا از کالا دنیا از امکانات دنیا لذا انسان فقط بداند که خدا تعالی قادر است هر کاری بکند هر آن و هر لحظه جانش را بگیرد پس چرا انسان از خدا غفلت میکنه و الله تعالی با وجود این قدرتی که بر انسان داره از عناد انسان و از پشت دادن انسان سخن میفرماید و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون هرگاه بينها گفتی میشه که اتقوا ما بین ایدیکم بتسید از جلویتون و از پشت سرتون ما بین ایدیکم و ما خلفکم یعنی چه اولا جمله را تک تکمیل بکنم اذا شرط جزایش ذکر نشده جزاره ما از فحوای کلام میفهمیم از سیاق کلام میفهمیم ای اذا قیل, اذا قیل لهم اتقو ما بین عیدیکم و ما خلفکم اعرزو به انسان این قد انسان دچار چار اناد و زد هست بهش گفته میشه انسان بترس اعراض میکنه کنه نمی ترسه پروا نمی بترس از ما بین عیدیکم و ما خلفکم تفسیرهایی که ما بین عیدیکم و ما خلفکون ذکر شده متفاوت هست شیخ رحمه الله می فرماید و بسیاری از مفسرین ما بین عیدیکم عذاب اقوام گذاشته بترسید از عذاب اقوام گذاشته اونه که جلوی شما هستند یعنی تاریخ جلوی شما هست قرآن جلوی شما هست ببینید بر عاد چی آمد بر سمود چی آمد بر قوم فران چی آمد بر قوم نو چی آمد بر لوت چی آمد ما بین ادیک و اینا اصلا. و ما خلفکم پشت سر عذاب اخراوی مراد است عذاب بترسید که هم در دنیا خدا معاخذه میکنه مثل اقوام گذشته و هم پشت سر یعنی در آخرت خدا معاخذه میکنه وقتی که به این انسان پوست کلوفت گفته میشه پروانمیکنه آرزو ارز میکنه چون اعتقادی نداره و بعضی گفتند که ما بین ایدیکم التزکیر با آلاء الله است این استلهات شوالی الله است تزکیر با آلاء الله یعنی تزکیر به های خدا و ما خلفکم التزکیر با ایام الله است یعنی بترس ما بین ایدی کم ببین خدای تعالی چه نعمت های به تو داده اینا را ناسپاسی نکن که معاخذی میشه وما خلفکم یعنی اون روزهایی که گزشتند ما بین ایدی کم روزهایی که در آینده هستن خدا به شما حیات داده زندگی داده نعمت داده امکانات داده همه هجلو شما هستند اونه که گزشتند التذکیر بی ایام اللہ است اون روزهایی که خدا عذاب آورده بر اقوام گذشته لذا وقتی که بینها گفت میشه اعراض میکنن بترسید لعلكم ترحمون تا اینکه مورد رحم خدا واقع بشید اما الله می فرماید و ما من آیتی من آیات ربهم پیش آنها نمی آیاد هیچ آیه ای از آیات ربشان الا كانوا عنها معرضین مگر از آن اعراض کننده هستند از آن رویگردان هستند و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله هرگاه به اینها گفته میشه خرج کنید از آن که خدا به شما عطا کرده قال الذين کفرو میگوین کسانی که کف کردن این کفار چی میگن؟ مسخری میکنن میگن ما به اینها خرج کنیم این فقرا. اگر خدا میخواست خودش به اونها میداد خدا ندادیم ما چرا بدیم قال الذين كفروا میگن کفار للذين آمنو به مؤمنین میگن ان نطعم من لو الله اطعم اي ما بخورانیم ما خوراک بدیم ما طعام بدیم به اونهایی که لو يشاء الله اطعم اگر خدا میخواست خودش خوراکشون میداد یعنی خدا به ما داد به اونها نداد به اون نظر خدا می خودش می داد ما چرا ببینین؟ این دلیلی برای بخل خودش میاره؟ این انتم الا فی ضلال مبین نیستی شما مگر در گمری آشکار خدا تعالی به یکی داده به یکی ندا امتحان الهی هست که ببیند این کسی که بهش داده چقدر به وظیفه خودش عمل میکنه در قبال و دیگری؟ لذا؟ وقتی که به اونها گفته میشد ای بیچاره اینقدر مغرور نباش عذاب خدا میاد وعده خدا حقی بعض از روی استهزا و غرور میپرسید که کی هست این عذاب این وعده کی هست گویا عجله داشت برای عذاب چون باورش نداشت و میگویند متا هذا الوعد ان کنتم صادقین میگویند کی هست این وعده اگر شما راست میگید حال خدا تعالی جوابشون میده اولا الله می فرماید ما ينظرون الا صيحه واحده انها نمیبینند و بعضی که میون زورند یا نه یام تظیر نیستند مگر یک فریاد صيحه یک فریاد یک جیغ اون فریاد فریاد اسرافیله همون سوره اسرافیله که میدمد فوتش میکنه چنان فریادی که هر یکی فکر میکنه بیخی گوش من است صداره از قریب یسمعون از من مکان قریب از نزدیک میشنه بد هر یکی فکر میکنه که این بلنگوش کنار من گذاشته چنان رسا چنان خطرناک تأخذهم که اون صیحه اینها رو میگیره در حالی که هم یخیصیمون اونا در حاله جرب بحث هستند یخصمون اصلش از یختصمون یعنی با هم دیگه دارن جرب بحث میکنن مثلا تو بازار داد و میکنه با هم دیگه بحث میکنن یا سر زمین با هم دیگه بحث میکنن یعنی تو کارهایشون درگیرند خبر نداره قیامت شده ناگهان میاد وقتی که بیاد مهلت دیگه نمیده مهلت نمیده حتی که وصیتی بکنه که مرگ آمد چکار بکنید با من و حتی نمیتونه تو خونه بره تا خونه بره الله میفرمای وقتی بیاد ناگهان بیاد یعنی هیچ مهلتی به انسان نمیده فلا یستطیعون التوصیه نمیتواند هیچ نو توصیه‌ای بکنند ولا الی اهلهم یرجعون و نبس ی اهلشان برمیگردن نمیتوانند یهو میاد اصاب جانشون را چراغ زندگیشون خاموش میشه این وقتی که خاموش بشه میمیرند این صیحه اول است این نفخه اول است این فریاد اول است بعد از این که مدتی بخواب تو قبر مدتی از این دنیا برد اون صیحه دوم اون نفخه دوم دمیده میشه زده میشه نفخه اول عذاب دنیاوی هست نفخه دوم دو عذاب اخروی هست دیگه زندگی آخرت شروع میشه وانو فی خف سور سور دمی دمیده میشه فا هم من الاجداف در این هنگام هنها از قبرها الى ربهم ینسلون بشتوی ربشان یعنی ربشان منظور موقف حساب است بطرف اون میدان حساب موقف حساب یانسلون یعنی فرار می کنم می تون تون می روند و چنان وحشت چنان خوف از کردم اونجا دیگه نوری نیست خورشید دیگه تمام شده خرشید بساتش برچیده شده قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ای وای چه کسی مارا بیدار کرد بلند کرد از آرامگاه ما ببین قبر را با وجودی که ما معتقدیم در قبر یه دنیای دیگه هست برای مجرمی سختی هست عذاب هست مشکلات هست اما با وجود اون سختی هایش وحشت قیامت چنان زیاده که قبر را برای خودش یک آرامگاه میداند جای خواب میداند خواب بودم راحت کی ما را بیدار کرد الله تعالی می به این افراد گفته می شه يقالو لهم یقالو انجا مقدر است ما وعد الرحمن این آن چیزی هست که الرحمن وعده فرموده و صدق المرسلون این آن چیزی هست که مرسلون و پیانبران راست گفتند درست فرمودند این روز برپا می این همون روز است این كانت الا صیحة واحدة نیست مگر یک فریاد هست یک صیحة هست فائذا هم جميع الذين محضرون در این هنگام همه و همه در محضر ما حاضر میشوند همه همه می آیند هیچ کسی نمی ماند فاليوم لا تظلم نفس شيئا امروز بر هیچ نفسی ظلم نمیشه ستم نمیشه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون شما پاداش داده نمی مگر آنچه که عمل کردید در دنیا حسب اعمالشون به شما پاداش می به شما جزا می دن تفصیل جزا چیه تفصیل اون پاداش ان اصحاب اليوم هم برای بعضی بشارت تبشیر برای بعضی تخویف انذار هست بهشت ها خوشحالند ان اصحاب الجنه اليوم همانا اصحاب جنت اصحاب بهشت امروز فی شغل فاکهون امروز در کار شغل مشغولیت کار فاکهون شادند یعنی مشغول چیزایی هستند که خوش شاد در آمادهگی میکنه برای بهشت یا رفت تو بهشت داره برای عیش ابدی و سرمدی آمادگی میکنه کنه هم و ازواج هم فی طلال علال ارائی که بعضی از نعمت های بهش ذکر میشه هم مادیش هم نعمانویش قبلا بنده ارز کرده بودم بخشی ذکر می همه ذکر نمیشه چون همه را با درک دنیا با عقل دنیا نمیتونیم درک بکنیم زیبایی هایی که در دنیا مادیدیم دیدیم بعضی از این ها تو به ذکر میشه چیزهای دیگه خدا میفرمه شما نمیدونید تو دنیا خوراکیهای های خوب لباس های خوب نوشیدنی های خوب باقی خوب ویلای خوب زن خوب همین هایی که اینجا تو دنیا خوبند اونها را خدا بعضی را ذکر میکن اونجا ولی غیر از این چیزهایی هست که اصلا تصورش را نداشتیم در خواب ندیدیم اونجا معلوم میشه اللهم این فرمایت هم و ازواجهم فی ظلال انها و هم سرانشان در سایهائی علی الارائی بر تختها متکی انتکیدادین لهم فیها فاکهتون برای آنان از در آن انوای میوها ولهم ما یدعون برای اوناس هرچی بخواهند هرچی که تلب بکنن اما این بهشتی که گفتیم این مادیش بود معنویش سلامون قولم من رب الرحيم سلام ای سلام لهم برای اونها سلام گفته میشه این سلامی که گفته میشه که ای این سلام معنیش اینه که ای انسان دیگه از هر آفت در امانی ار از هر مشکل محفوظی نه بهشت ازت گرفته میشه نه نعمتت کم میشه این قولی هست قولا یعنی یقال لهم گفته میشه این سلام از جانب رب مهربان گفته میشه لذا این تبشیر بود حال تخویف این بشارت برای اهل الدین اه اهل طاعت و بندگیه اما مجرمان مشرکان کسانی که در دنیا اطاعت نکردند وامتازو اليوم ایوها المجرمون ای مجرمان شما جدا بشید صفتون را جدا کنید از مؤمنان. چرا جرمشون چی بوده گناہشون چی بوده علم آهد لیکم یا بنی آدم آیا اهد نگر نگرفت بودم از شما ای بنی آدم ای فرزندان آدم الله تعبد الشیطان انکی شیطان را پرستش نکنید کی مگه شیطان را پرستش کرده تر دنیا کسی شیطان طرسیس امروز یک تعدادی هستن اینا در مقابل جمعیت دنیا جمعیت می سامنے میان در هر زمان مردم از شیطان بیزار شدند اما عبادت شیطان را انسان ندانسته همیشه انجام میداده به هر سمتی که شیطان او را برده برای عبادت غیر غیر خدا همون سمت رفت شیطان گفته خورشید رفته خورشید را پرستش کرده آتش آتش را پرستش کرده بوت بوت را پرستش کرده انسان جن هر چی که شیطان راه نمائیش کرده فریبش داده حرف شیطان گوش کرده حرف انبیاء را گوش نکرده لذا این در واقع عابد خود شیطان بوده حتی اگر نیکان را عبادت کرده فرشتگان را عبادت کرده ما خاندیم که فرشتگان در روز قیامت می گوین خدای ما کانو ایانا یعبدون بل کانو یعبدون الجن اینا ما را که عبادت نکردند اینا جنات را عبادت کردن چون همین شیاطیم بودن خودشون را به شکل اولیاء خودشون را به شکل صاحب قبر در می آوردن و می گفتن گسفن بکشید انجا انجا سجده کنید این هم پس این عبادت عبادت شیطان اینه لکم عدو مبین گفته بودم شیطان را عبادت نکنی که دشمن آشکار شماست وانعبدونی فقط من خدا را عبادت کنید هذا سراط مستقیم سراط مستقیم همینه قبلا خدمت شما عرض کرده بودم این سرات مستقیم که ما همیشه در نماز از خدا می خواهیم اهدن السراط المستقیم این توحید فی العبادت است یعنی فقط خدا را عبادت کردن در اون عبادت خدا کسی را شریک نساختن ما در تبلیغ سیدنا ایسا صلی اللہ علیہ هم خاندیم که ایسا صلی اللہ علیہ بعد از اینکه توحید را تبلیغ کرد آخر به مردم گفت الله اللَّهَ رب و وَرَبِّكُمْ فَعْبُدُوهُ نتیجه دلائل من اینکه رب من و رب شما خدا فقط او را عبادت کنید ها سراط و مسطقیم مستقیم هم همینه که فقط خدا را عبادت کنید اینجا هم خدا می فرما انع فقط من رب را عبادت کنی ها سراط و مسطقیم بس ما در صورتی بر سراط مستقیم هستیم که در عبادت با خدامت کسی را شریک نسازیم اگر در عبادت هم خدا و هم غیر خدا هم صدا میزنه خدا را هم یا فلان ادریکنی هم گوشفن میکشه برای خدا هم برای غیر خدا هم شربت و شیرینی برای رضا خدا میده هم برای رضا غیر این پس خدا را خالص عبادت نکرد این ورسلات مستقیم نیست انا اعبودونی فقط من را عبادت کنید هاذہ سورت مستقیم و این شیطان را که شما عبادت کردید یعنی چه یعنی گمراه کردن شیطان شما را گمراه کرد شما هم حرفش را پذیرفتید عبادتش همین نه و منكم شیطان گمراه کرد از شما خلق زیادی را aflam takun taaqilon aye shoma aql nadashtid dark nadashtid va ke anam turki quran gofte ahl al shirk aql nadarand agar aql dashte bashan آخی خدا تعالی همه این عالم را برای عبادت خودش خلق کرده همه میدونه غیر از خدا کسی خالق نیست همه اینهایی که غیر خدا را سجده میکنم میدونه خالق بپرسید شما همونطور که قرآن گفته آسمان را کی درست کرده میگه الله، زمین را کی درست کرده میگه الله. خب چرا غیر خدا را سجده میکنی اغل نداره توجی میاره تعویل میاره توجیحات غلط لذا الله می فرمای افلم تکونو تعقلون آیا نبودید شما عقل و خیرت داشته باشید هذه جهنم التي کنتم لذا چون شيطان شیطان را پرستش کردید گوش به فرمان شیطان بودید لزا اکنون این هست جهنم اون جهنمی که کن کنتم تو آدون در دنیا شما واده اجداد می شدید اس داخل این جهنم بشید امروز بما کنتم تکفرون این دلیل عذابه به سبب اینکه کفر میکردید به سبب کفر شما داخل بشید لذا عبادت غیر الله کفر کفرانه نیامتم هست الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ اللهم امروز دهانشون را دهان ما مهر میزنیم دهانشون را ما مهر میزنیم به تعبیر ماها امروزیها زیب می کشیم بر دهانشون وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ با ما سخن میگوید دستهاشون، گواهی میده پاهایشون به مکان یک سبون اون کی کرده یعنی اعمال مشرکانه کی کرده ببین اینجا خدا تعالی فرمود دهانشون را مهر می زنیم اما در سور حامیم از هست که یوم تشحد علیهم السنتهم زبانشون بر علیون انها گواهی میده، زبان بر علیون انها گواهی ده پس دهانش بازه خب این دعایه بظاہر با هم تناقض داره اینجا گفته شده که دهان زیب کشیده صحبت نمیکنه اونجا میگه که شهادت میده بر علیه اون زبانش تطبیق این دعای با هم دیگه چطور است جواب و پاسخش اینه که اصل اینه که این زبان با اختیار خودش با اختیار خود انسان صحبت نمیکنه. دهان مور میشه یعنی اختیار از انسان سلب میشه انسان هر چی میخواد بگه نمیتونه میگه خدا عزوجل به همه اعضا همون طور که به دست اختیار میده به پا اختیار میده چون خیلی گناهان را شرک را انسان به وسیله دست و پا انجام داده خیلی گناهان هستن به وسیله زبان انسان انجام داده بلکه بیشتر کلمات شرکیه را انسان واچی گفته وامی همین زبان تلفظ کرده دروغ با زبان گفته بحتم با زبان گفته لذا گناهان زبان هم کم نیستند این اختیار از زبان سلب میشه از انسان سلب میشه که یعنی زبانش در کنترل خودش نیست این نختی معلع به این معنا زبان در کنترل خودش نیست هرچی دلش بخواد زبان همونطور که دست اختیار داده میشه زبان در اختیار خود زبانه زبان اون وقت حقائق را میگه پس اونجا که آیه میگه تشهدو علیهم السنتو هم بدون اختیار آقا زبان چیکار میکنه؟ حقایق را میگه پس اون آیه با این آیت تناغذ نداره تعاروز نیست با اختیار خود خودش انسان نمیتونه صحبت بکنه بدون اختیار زبان صحبت میکنه زبان میگه من این کلمات را گفتم این تلفظ شرک را کردم چنان کردم چنان نکردم رضا اللہ می الیوم نختم علی افواهہم امروز ما مهرمی زنیم بر دهانشان و تکلمونا ایدیہم سخن میگوید با ما دستهایشان و تشهد ارجلهم و گواہیم دی پاها ایشان به ما کانو یک آنچه که کسب کردند یعنی به تمام اعمال مشرکانی که انجام دادند ولو نشاء لتمسنا علا اعینهم این در دنیا است اند عذاب آخرت تمام شد خدا میفرماید که در همین دنیا ما بخوایم دیدش شما را میگیریم ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم اگر ما بخوایم محو میکنیم چشم اونها را تقتی میکنیم یعنی اصلا چشم بین را ازش میگیریم گیریم مضیا کنت که نن برون جلوتر ولا یرجون فست و قصرات فست و قصرات در راه پیشی میگن از هم دیگه؟ فنا یبسرون چطور میخوام ببینند نمیتونن دیگه راه برند چه برید از هم دیگه سبقت بگیرن ولو اون ن ش سخنا هم و هم اگر بخوایم در همین جایی که هست همین جا مسخشون میکنیم تبدیل به حیوانی دیگه میکنیم چنان چه پیش نان کردیم؟ قیرده خنازین فما استطاعو مضیین نمیتونن جلوتر برند ولا یرجعو نتونن برگردند لذا الله تعالی میفرماید که خداوند هر وضیعتی میتونه بر انسان بیاره پس چرا انسان تذکر نمیگیره یعنی همونطور که در آخرت خدا میتونه عذاب بده در همین دنیا میتونه عذاب بده در در همین دنیا خدای از و جل حواس را از انسان بگیره عقل را بگیره چشم را بگیره گوش را بگیره میتونه پس چرا انسان درس نمیگیره عبرت نمیگیره و خدای تعالی میفرماید که به اندازه کافی هم ما بهشون عمر دادیم همین عمری که ما داریم پنجه سال خدا به بعضی داده شس سال داده هفتاد سال داده برای تذکر برای درس گرفتن کافی نیست چون بیشتر از این عمر وقتی می کنیم از هفتاد و هشتاد رد میشه دیگه انسان کم کم حواسش را از دست میده اون وقت تذکر پذیر نیست دیدش ضعیف میشه گوشش ضعیف میشه کمرش دلا میشه زانوهاش کار نمیکنه نمیتونه فکر بکنه نمیتونه درک بکنه نمیتونه عمل بکنه بیشتر از این برای تذکر به درد نمیخوره بعضی از مفسری میگویند که کفار در روز قیامت میگن اگر خدا مقدار بیشتر به ما عمر میداد تو همون دنیا ما حتما ادایت میشدیم أن الكافر يقول لو لبسنا في الدنيا إلا يسيرا خدايا ما در الدنيا نمانديم مگر كمي مانديم ولو عمدتنا لما وجدت منا تقصيرا اگر چند وقت ديگه بما عمر ميلادي هیچ كتاهي در ما نمی ما متوجه می شدیم می فهمی دیم ترم می شناق دیم مقدار تجربه بیشتر حاصل می شد ده سال ديگه مثلا عمر داشتیم 20 سال دیگه عمر داشتیم الله تعالی می فرما افلا تاقیلون شما مگر اینقدر عقل نداری شما اگر بیشتر عمر می دادم شما روز بر زیفتر می شدید مفهوم این آیه بعدی همینه که انکم کلما دخلتم فی السن هر اندازه که پا بسن می گذاشتید ضعفتم زیفتر می شدید وما باندازه که شما درک بکنیم به شما عمر دادیم و قد امرناکم مقدار ما تتمکنون مقداری که شما قدرت فکر کردن داشته باشید من البحث والادراک درک کردن داشته باشید را داشته باشید دادیم پنج سال دادیم چهل سال دادیم شش سال دادیم شما تذکر نگرفتید لذا خدا می و من نعمر هو کسی که ما زیاد عمر بدیم نونکس هو في الخلق در پیدایش اون را چکار میکنیم؟ سرنگون میکنیم؟ یعنی چه؟ یعنی انسان سرش بالاست و خیلی پیر بشه سرش میاد پایین کوز پشتش میره بالا نونکس هو في الخلق یعنی طبعا اون را ما چکار میکنیم؟ سرش را پایین میکنیم؟ افلا یا قیلون؟ نمیدونند به اندازه تذکر، به اندازه درکوفا ما به انسان عمر دادیم چرا از این عمر استفاده نمیکنه و ما علّم نه شیر اینجا خداوند عزّ و جل شبهاتی که درباره رسول الله است، اونها را پاسخ میده اونها وقتی که رسول الله این آیات را بیان می‌فرمود می گفت که اینا همه سجع هست وزن کافی داری این شیر داری میگه. الله می‌فرماید: و ما عالم نه ما بی اود شیر تالیم ندادیم و ما یم بقی لهو و شایسته او هم نیست کی شاعر باشه. این هوا ایلا ذکر و قرآن مبین این کتاب نیست مگر پندی هست و قرآن آشکار هست چرا خدا فرستاده لیونظر من کان حیا می هدفه. انزال قرآن اینه قرآن را خدا نفرستاده برای دعا نویسی قرآن را خدا نفرستاده برای اینکه ما ختم بگیریم و پول بگیریم چون بعضی ها قرآن را وسیله معاش قرار دار مردم هم چون از قرآن بیخبرند و نا آگاه هستند فکر میکنند قرآن فقط یک وسیله هست برای تبرک برکات هم تو قرآن هست یعنی تبرک به این معنی که هر وقتی که می خواستیم برکت حاصل بکنیم بخونیمش تو تاقچه خونه بذاریم برکت میاد تو ماشینیمون بذاریم آویزونش بکنیم برکت میاد فقط یک سری افکار سطحی در باره قرآن الله می ما قرآن را نازل کردیم لیون ذر منکان حیین بیم بده اون قلبی را که زنده هست قلب مرده نمیفهمه، فهمه للمتقین اهل تقوى هدایت مگیرند خط مگیرند از قرآن بس ليونذر من كان حيا حيا ايه حياة القلب تبیم بده انذار کند تذکر بده هر اون انسان لك قلب زنده دارن و يحق القول على الكافرين و قول ثابت میشه قول یعنی عذاب کافران. اولم یرو اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعامن حال خدای تعالی از این جد دلائلی این انسان باید منو کرنش بکنه در مقابل من سر تصنیف فرود بیارد بی بی من برای انسان چی چی درست کردم چه امکانات چه نعمت های این دلیل اغلیه اولم مما مم از اونچی مما ما, عملت ما دی یعنی ما مستقیم درست کردیم برای انها یعنی مالکو تا شطور داره تا چند دار دار تا انار کی خلق تو این صاحب این همه مواشی هستی و ذللناها لهم انها تابعه کردیم تابع انسان ها هر وقت دلش میخواد از شیرشون استفاده میکنه هر وقت دلش میخواد از پشمشون استفاده میکنه از گوشتشون بعضی ها یکی از سواریشون مثل شتر سوارشون میشه و ذللناها لهم آن چار پایان را ماتاب قرار دادیم برای انسان ها همیشه می گم اللہ تعالی که به حیوانات عقل نداده این چه نعمت بزرگ ہے ما عقل داده ب اونها عقل نداده و اگر اونها ذره عقل داشتند اونها با هم متحد میشدن چرا انسانها همیشه مارمی کشند میکشن با هم یک اتحادیه تشکیل میدادند انسان زورش میرسی رس بی اونها الله تعالی می فرماید ما اونها را تو آفریدیم که لگامش را بگیر در اختیار خود تسار کار میکنی آش بکن از شیرش استفاده میکنی سوارش میشی پشمش را برمیداری گوشتش را خودش را نحر میکنی زب میکنی وذللناها تاب انسان قرار دادیم بر تاب قرار دادیم لهم برای انسانها، فمنها رکوبهم از همین چار پایان سواریشان هست، و منها یکلون از همان حمی هم خورن گوشتشان، و لهم فیها منافع و مشارب برای انسانها در اون منافع دیگری هست و نوشیدنی هست بهترین شیر، بهترین لباس از پشم اونها درست میشه، بهترین کفش از پوست اونها درست میشه. بهترین ها همه از درست میشه افلا یشکرون اینس تشکر نمی کنند شکر نمی کنند شکر به جای خود شرک می کنند چطور شرک می نعمت مال خداست این سواری که داده خدا ازش استفاده می از شیرش از گوشتش از پشمش بعد این نظر می برای برای الله بنامه غیر خداون را می شکر کی نمی شرک میکنی، کنی واتخذو من دون اللہ آلها گرفتن بغیر از الله دیگران را معبود لعلهم ینصرون تا انکی یاری بشواند کیون امور کمک می الله اللہ می فرماید لا يستطیعون نصرهم انها نمی توانند یاری انها بکنن وهم لهم جند محضرون اینها برای خودشون یک لشکر هست که محضرون حاضر باش البته دوتا تفسیر داره یعنی خود این خدایان نیاز به خدمت دارند این خدایان را حتی نظافت خودشون را نمیتونم بکنند که بروی خدایان منشیند اینا یک گروه هستم میرم پاکشون میکنند یک گروه تمیزشون میکنند یک گروه نمیدونم روغن میزنند یک گروه فلان میکنند خود خدایان نیاز به چی دارن؟ به یک به بلشکری دارن که یقدمون اون، خدمت اونها رو میکنن خدمت خدایان پس خدایی که اینقدر نیاز دارد که همیشه تو تمیزش میکنی همیشه تو کار دو غبار رازو دور میکنی همیشه تو به او صفا و جلا میبخشی او خدا چطور میتونه برای تو کاری بکنه او خودش نیاز به خدمت تو داره و. بعضی گفتم و هم لهم جند و اینجا خداوند بر اساس زن و گمان فاسد مشرکان صحبت کرده که اینها میپندارن که لهم جند برای اینها لشکری هست محذرون یعنی حاضر شده هر وقتی که ما بخواهیم حاضر میشن شفاعت ما میکنن مشکل ما را حل میکنن بعضی به این معنی کردن فلا يحزنك قولهم اي اي پیغمبر من قول اینها شما را حزین نکند شما غمگین و ناراحت نکنند. ان نعلم و ما يسرون وما يعلنون ما میدونیم اون چیزی که مخفی میکنه اون چیزی که علنی و ظاهر میکنند. همه را ما میدونیم خب تا اینجا خدای تعالی دلایل بر اثبات توحید بیان فرمودند این دو چیز در سوره های مکی خیلی برجسته است یکی مبدع یعنی توحید یک تاپرستی خالق فقط یکی هست فقط او را عبادت کنید یکی معاد بعد از این زندگی دوباره زنده بیشید می پاسخگو میشید برای اون زندگی آمادگی بکنید این دو عقیده مبدع و معاد توحید و قیامت و سیموی که نبوت باشه اینها را در سوره های مکی الله تعالی بسیار برجسته و زیاد بیان کرد همه دلایل حول همین ها میچرخد تا این جما خاندیم آثاری از قدرت پروردگار این همه انعام و مواشی و حیوانات و امکانات دیگه برای ما پیدا کرده غیر از او کسی دیگه نمیتونه پس ما فقط او را به معبودیت بشناسیم به الوهیت بشناسیم بعد از این خدای تعالی دلایل اثبات قیامت بیان می فرماید من قبلا خدمت شما عرض کرده بودم برای اثبات قیامت سن و دلیل هستند یکی این که خدای تعالی برای اثبات قیامت از مخلوقات بزرگ استدلال می میگه ببین خدا این آسمان را تونس خلق بکنه این زمین را با این وسعت قدرت فوق العاده ای داره پس برای این انسان کوچولو خدا قدرت نداره پیداش کنه انتم اشد و خلقا امی سما پیدایش شما سختر آسمان آسمان را خدا وقتی خلق میکنه شما را چرا نتونید. نوع دوم استدلال امروز شما خاندید که خداوند باران را نازل میکند زمین زنده میشه همونطور که این زمین مرده زنده میشه یه روزی همه دنیا مرده انسان ها مردند خدا بارانی نازل میکنه بر اساس روایت بخاری تمام انسان ها دوباره زنده میشن اون زمانی اس کے سید حمزہ بھیเช فیزاهم قیام و خب اون خدایی که زمین مرده را زنده میکنه انسان مرده هم زنده میکنه اگر شما بخ... بخواید با عقلتون بسنجید خود خب همین ها را با عقل چطور با عقل جور در میاد آب میریزه تمام زمین سبز میشه زنده میشه پس اینها همونطور که غیر معقول است، پس شما دنبار عقلیش نگردید سوم، سوم چیز وجود خود شما یک قطره نطفه هست بی جان هیچ نوع حیاتی تو اون نیست اما از این قطر نطفه چه انسان سمی بصیر با کمال با اغل و درایت خدا درست میکنه؟ کنه انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمی بصیرا لذا ان سنو دلائل هستن که در قرآن ذکر میشه ان جسته و میشه حسن اولم یرالانسان اولم یرالانسانو اننا خلقناه من نطفة آیا انسان نمی ما او را از قطر نطفه فاذا فا هو هوا خصیم مبین در این هنگام انسان خصیم هست خصیم یعنی جر رو بحث کننده آشکار ای hey بل بل زبانی می کنه ای hey جر بحث می با انبیاء ما ای قبول نمی کنه من قبول ندارم تو توکه انقاد تو کمالداری تو که انقاد زرنگی داری آخر از چی درست شدی؟ اون جارا نگاه کن اون نطفه رب این انسان با کمال که بر و بحر را در کنترل خودش قرار داده انسان همه جا حکومت میکنه تو دریا حکومت انسان است تو خشکی حکومت انسان است در این جو و فضا حکومت انسان هر جا حکومت میراند خب کی اون اون نطفه رب این انسان با کمال تبدیل کرد لذا الله می فرماید فإذ هو خصيم مبين همون طور که از این نطفه انسان با کمال و با انسان خسیم و جر و بحث کننده پیدا شد همون طور دوباره همون خالق همون آفریننده این استخوان پوسیده را دوباره انسان کامل می و ضرب لنا مثلا و نسي خلقا الله میفرما برای ما مثال بیان می کند انسان ها در طول تاریخ خدا را کردم به پادشاهان همیشه میگه آقا شرک نکن میگه من اگه برم پیش رئیس جمهور نمیتونم مستقیم برم مشکلم را بگم که برگ خون من خرابه آسفالت تی من خرابه ما باید واسطه بشیم واسطه بگیریم بلاخره یا رئیسی را یه مدیری را یه فلانی را تا اینکه ده واسطه به اونجا برسیم خدا هم همچینیم ما دسترسی به خدا نداریم بندگانش را صدا می این انسان بیچاره همیشه با عقل خودش میخواد دین را کسی بخواد با عقل بفهمه دیگه فاتحش کنده الله می و ضرب ل نام فلان و نسی خلق برای ما مثال بیان میکنه و خلق خودش را پیدایش خودش را فراموش کرده آلما یحیی العظام می گوید چه کسی زنده می کند استخانهارا در حالی که وحی رمیم استخانه پوسیده شدند الله جواب می ده قل یحیی ها انشأها اول مر بگو زنده می کند انها را آن ذاتی که ایجاد کرد بار اول و هو بکل خلق نالیم اون ذات به هر خلقی تمام مخلوقاتش دانا هست عالم هست خبر دارد الَّذِي جعل لَكُمْ من الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَا آن که آفرید برای شما از درخت سبز آتشی درخت که تر سبز آتش می، میفروزید شما چطور این درخت را سبب آتش بعضی میگم منظور از درخت سبز اینه که این درختان تمامه آتش به وسیله چوب میشه. تمام چوبها از درخته ببین درخت درخت سبز بود ولی خدای از و خوشکش کرد بعدا این موادی شد به عنوان چی؟ مواد آتشزا که شما تمام مایحتاج و نیازهایتون را زمین درخت دارده میدون بعضی میگن نه درخت سبز حالا در منطقه ما نیست در منطقه عرب بود دو, دو تا درخت بودن به نام مرخ و عفار دو تا درخت بودن بله نام مرخ و عفار این دو تا درخت را وقتی که مردم تو جنگل ها سفر می کردند دو تا شاخ بی به هم می آتش روشن می شد همون طور که امروزه بالاخره ما از از گوگرد و از کبریت به اسطلاح که نوع مادهی هست از اون آتش را روشن می کنیم اللہ می فرماید چطور شما آتش روشن میکنین مشکلتون رحل میکنین فا اذا انتم منه توقدون شما این گام از اون آتش افروخته میکنید. ببین قدرت خدا هر جا آثار قدرت پروردگار است اولیس الذي خلق السماوات والارض آیا نیست آن ذاتی که آفرید این آسمان ها و زمین را این نوع دوم از دلیل هست اون ذات نیست قادر بقادرین قادر نیست على ان يخلق هم مثل این ها خلق بکنک بلا چرا نیست وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ او خلاق هست او فوق الاد خالق هست و او داناس هم قدرت داره هم علم داره و برای او کاری نداره اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون جو ذن نیست که امر او یعنی شأن اون پروردگار جایگاه اون پروردگار توری هست که اذا اراد ان هرگاه اراده کنت کاری را هرگاه تصمیم بگیرید کاری را ان یقول له کن به او فقط اشاره کن میکنه می فیکون فهو یکون خود به خود درست میشه پس ذات پروردگار قدرتش این هست فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء پاکس آن ذاتی که بدست او هست، پادشاهی و اختیارات هر چیز، اختیارات تمام آشیا بدست الله تعالی هست، و ایله ترجعون فقط و فقط به سوی او شما برگرداندیم میشوید بازگشت شما به سوی او هست، پس شما او را فرمانی نکنید. یعنی که اون ذات که این قدرت را داره هیچ شفیه چون بحث سورهای گذشته بحث شفاعت بود هیچ شفیه در دربار او وجود ندارد.